بخش سوم. ویل می چریدم. با اینکه تا ایک چیزی نمانده بود ولی هوا سرد بود بیشتر کسانی که زمستانها رو با من سپری کردند میدانند که من عجیب از پا سردم می شود. یعنی وقتی انگشت‌های پایم یخ بزند افلیج می شود. آن وقت حتی اگر بقیه هیکرم را توی پوست کرگدن هم به تپانند افاقه نمی کند. پیش آمده که از پا زوکام هم شده باشم من روز هم دامپایی پشته بودم که خودش وزن رو بدتر میکرد. اما باز هم به دلایلی که خواهم گفت نمیخواستم زود به خانه برگردم. همینطوری برای خودم خیابانها رو گز میکردم. اینجور وقتها خیلی غصم میشود. حتی هوا گرم, گرم هم که باشد باز غصم میشود. چون اگر اوزا بخواهد همینطوری پیش برود احتمالا قبل از اینکه خوب از آب و گل در بیایم به جامعه تحویل داده میشود. و این چیزی است که بدون شک نه به نفع من تمام خواهد شد نه جامعه راستش را بخواهید با این کارهایی که جامعه دارد در حق من میکند شانس خوشبخت شدنم هر روز دارد کمتر میشود ترجیح دادم قبل از اینکه خیلی به سیگار احتیاج پیدا کنم یک نخ چاخ کنم به نظرم با این روش آدم دیرتر معتاد میشود برای اینکه کسی من را نبیند سیگارم را همیشه از میدان مقدم می خرم که یک ایستگاه با خانه فاصله دارد و چون هنوز کاملا سیگاری نشدم، همه جور چیزی میکشم. دو نخ سیگار را پشت به پشت دود کردم. بگوی نگویی کمی هم چرخیدم، اما باز هم آخرش زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید به خانه برگشتم. حتما برای پیش آمده که سرمایه هوا همه یک هاز کوزه اتان را به هم ریخته باشد. خانه که گفتم خانه خود ما نیست. در واقع تنها دارایی ای آقا جون است. باید بگویم که پدر بزرگ پدری وقتی که من خیلی کوچک بودم مرحوم شده و آقا جون بابای مامان هم که هنوز مرحوم نشده. پدرم هم, هم که از بیخ نیست. از وقتی طلاق مادرم را داده هیچ وقت خدا درست و حسابی یک جاون نمی شود ببینیم کجاست. گاهگای از این طرف آن طرف خبرش را با این زنهای سیغهی برای ما میآورند. روی اصل سرزبانی هم که دارد خوب این را زنک از همین ال خیالتان را راحت کنم که مسئله طلاق به هیچ وجه به مامان مربوط نمی شود مامان از آن زنها نیست که بخواهد طلاقش را از کسی بگیرد یا کسی را طلاق بدهد. اما اگر کسی بخواهد ازش جدا شود مقاومت زیادی از خودش نشان نمیدهد. بعض یه ماقع خیلی ساده است یا از ده سال پیش. من آن موقع شش سال بیشتر از خودوم نگرفته بودم. آن روزها یک جایی در مه شهر کاش توی زیرزمین فسخری می نشستیم. برمان هم؟ تمام با اقا جنگل بود جای خیلی با بود به خاطر و اینها نمیگویم جدا صفای عجیبی داشت هفته شب هم که برق نداشتیم توی کوچو خیابان چشم چشم رو نمیدید توی تاریکی با بچه ها جمع میشدیم شدیم سر سگ در میآوردیم و میخندیدیم کم کمش یک میلیارد افغانی مدامان دور و بر پلاس بودن که برای همین هم از هشیش و چلی و تریا گرفته تا هرچی فتو فراوان پیدا میشد به خداوندی خدا عشق دنیا رو می کردم. جایی به اسم بهشت روی کره زمین وجود ندارد ولی به نظرم شبیه ترین جا به بهشت همان مهر شهر است بعد از اینکه کار پدر و مادرم یکسر شد زار و زندگی رو جمع کردیم و هر دود کشیدیم به همین خراب شده قلعه مرقی من بودم و مامان و خواهرم شیما که آن موقع به زور دو ماهش می شد. تا مدت متوجه چیزی نبودم طوری تا می که انگار خانه سر و صاحب ندارد. نه اینکه بیخیال و مشنگ باشم اما اخلاق گندی که دارم تا چیزی یک ضرب روی مخم نرود کاری به کارش ندارم هنوزم که از فکر می کنم طلاق نباید چیز خیلی مهمی بوده باشد یعنی تأثیرات مخربش آنقدرها که آقای مهدیپور معلم کلاس پنجم برای مامان میگفت نبود مادرم هم کم و بیش مثل من فکر می کند و اگر جا ترکان نبودم محال بود قضیه تأثیرات مخرب را گردن بگیره. چند بار هم خودم بهش گفتم که مسئله شبدراری من به هیچ عنوان به طلاق مربوط نمی شود و او می تواند با خیال راحت به زندگی ادامه دهد اما مامان همیشه خیال می کند که قصد دارم با این حرف دلداریش بدهم در واقع من قصد دلداری هیچ کسی را ندارم و فقط می خواهم که مشکلم از حالت یک بیماری روانی بیرون بیاید یک چیزی هست اینکه من هیچ اعتقادی به این بیماری های دم دستی مامان. هزار بار تا من رو برای دوا درمان این طرف و آن طرف کشیده این قدری که تا به خرج این لعنتی کرده هم خرج دیگر دیگرم نشده است همین الان که دارم اینها رو میگویم راحت دوتا دندانم را رو کرم خورده است یک دکتر اعصاب و روان به اسم دکتر گروهی توی محل هست که بیشتر مهمان خودش بودیم آقاجونم با اینکه هیچ وقت نصف مشکل من را هم نداشته ولی خوب میشناسدش همیشه میگوید این یه تختش کمه برای این حرفش هم دلیلی چیزی ندارد. کُلن بیشتر مردم درباره دکترهای اعصاب و روان همینطوری فکر میکنند. به شهادت همه دنگ و های قلعه مرغی، گروهی دکتر خوبی است، اما من یکی زیاد عاشق سروریختش نیستم. یک عینکی بیغواره دارد که هر کدام از شیشههایش به اندازه یک نالوکی کوچک بزرگ است. و هر کدامشان هم انگار که ترک خورده باشد، یک خط افقی داشت که خیلی ترسناکش کش می کرد. این بود که هر وقت می خواست چیزی بخواند، عینکش را بر می داشت من هرچه تا به حال دیدم این جور بوده تمام عینکی یا همیشه عینک دارند یا اینکه وقتی میخوان چیزی بخوانن میزنند اما این بابا درست سر به زنگا اینکش را در آورد سر همین کارهای خلخلکیشان است که مردان برایشان حرف درست میکن. روش جالب توجهی هم داشت به جای اینکه یک راست بیاید مرد و مردانه با خودم صحبت کند تا نیم ساعت فقط مامان را سینجیم می کرد. انگار که مامان ایبایل لی کرده است کارش که ور تمام می شد بودا بادا می سر وقت من. حالا یا شروع می کرد به اصول دین پرسیدن یا با یک چکش می به جان زانو هم. روزهای اول فکر میکردم از دستم دلخوره است یا از مامان پول می گیرد که غیر مستقیم ادبم کند که اگر همینطور بود نباید ضربه را به زانویم میزد خودش هم خوب می که مشکل از اساس به جای دیگری مربوط می شود. دکتر گروهی پیشبینی میکرد که اگر سریع به دادم نرسند خیلی احتمال دارد که من یک آدم تیپا خورده اجتماعی از آب در بیایم. در خلال معایناتی که ازم می کرد، به این جنبندی رسیده بود که کسی مثل من می‌تواند برای گروه همسالان یا بعدها برای کل جامعه موی دماغ بشود. من اگر جای او بودم جلوی مریضی که ممکن است به زودی از جامعه تیپا بخورد اینجوری روک حرف نمی زدم. که چیزی نیست. ولی اگر روزی میلم بکشد موی دماغ کسی بشوم اول از همه دخل خودش را میآورم تا حالا که زنده است روزهای اول طلا خیلی کیف داشت و چون قلع مرقی هنوز آن روی خودش را رو به هم نشان نداده بود حالا روز خوبی داشتند. ها میکردم که انگار خانه سرا صاحب ندارد. یک خورده دلیلش این بود که آن روزها همه دور مامان جمع شده بودند و یک ریز ازش دلجویی میکردند و من زیاد تحت نظر نبودم. اگرم دست بر غذا کسی بهم نزدیک میشد یا دستی به گلو گوشم می کشید، یا اینکه یواشکی کلی پول توی جیبم میگذاشت و چون من برای دراز مدت روی محبت های بشر دوستانه حساب باز کرده بودم مثل دردونه حسن کبابی هر غلطی دلم میخواست میکردم. کرم <تصفيق> از دیگران هم بود بودنازا نوازش زیادی بچه را نونور بار میآورد. اوایل همی مادر بزرگم مگر کم پولی میداد خودش داوطلبانه دو برابر پولی را که امروز با کلی بدبختی ازش کش میروم کف دستم میگذاشت اما الان مدت است که امرات به سختی میگذرد و حتی گاهی برای خرید چیزهای پیش پا افتاده هم انگ می اندازم. این را برای اینکه دل کسی را به سوزانم نگفتم گفتم که حساب کار دستتان بیاید. تمام بچگی من را هم اینجا عمل آمدیم یازده سال گذشته ولی هنوز نمی‌توان گفت که تو محل حق آبا دار گل داریم الامورغي اینقدر قدیمی هست که با دو برابر این سالها هم نمی‌شود جز قدیمی ها حساب شد مثلا همین قیس تمام خانم همسایه ما پنجاه سال است که یک نفس توی محل بس نشسته و اگر تصمیم بگیرد باز هم زنده بماند گمان نمیکنم حالا حالاها کسی بتواند روی دستش بلند شود با اینکه ماندن در قلع مرغی چندان چیز هیجان انگیزی هم نیست اما شکستن به عزیز رکوردها به قیمت عمر آدم تمام می‌شود